داستان تبل جادوی. در زمانهای خیلی دور حاکم ثروتمندی زندگی میکرد که پنجاه همسر صدها فرزند هکتارها زمین و هزاران ورده داشت با این حال اون حاکم مهربون و عادل بود و مردم سرزمینش همه شاد و راضی بودند حاکم ثروتش رو با تبل جادوییش به دست آورده بود. خاصیت تبل این بود که هر وقت حاکم ضربه‌ای به اون میزد، مقدار زیادی غذای لذیذ روی میزها چیده میشد. تو اون کشور این یک گنج بزرگ بود. حاکم از تبلش برای غذا دادن به زنا و بچه ها و خدمتکاراش استفاده میکرد و به کمک اون از جنگم جلوگیری میکرد. هر وقت قبیله همسایه به اون اعلام جنگ می و جنگجی دشمن بدنشون رو با ترهای ترسناک رنگ می و نیزه به دست و فریاد کنون حمله می کردن. حاکم تبلش رو مینواخت. نواخت. فورین میزی با غذاهای رنگا رنگ ظاهر می شد. جنگجی رو زمین می و به طرف غذا حمله می بردن. اونا تا جایی که شکمشون جا داشت میخوردن و دست آخرم از حاکم به خاطر سخابتمندیش تشکر و خداحافظی میکردن. بعدم به طرف خونه هاشون بر و جنگ و کنار میذاشتن. پادشاه از غذای تبل به حیواناتم میداد. در اون زمان ها انسان ها میتونستن زبان حیواناتو بفهمن. هر روز فیلا، شیرا، پلنگا، گوسنو و گاوای وحشی اونجا جمع میشدن و وقتی غذای سیری میخوردند دوباره با آرامش به جنگل برمیگشتند. اما تبل راضی داشت که هیچ کس جز پادشاه از اون با خبر نبود. تبل فقط وقتی غذا میداد که صاحبش اون رو بنوازه. اما یک روزی صاحبش از روی شاخه یا درختی که روی زمین افتاده بود میگذشت جادوی تبل فرق میکرد. اون وقت به جای غذای جنگجه های خشبگین از اون بیرون میامدن و به هر کس که دوروبرشون بود حمله میکردن. پادشاه که از این راز به خوبی آگاه بود همیشه هنگام سفر رو رفت آمد دقت میکرد و موازه به زیر پاش بود و تا اون روز تبل هیچ وقت به جای قضا دادن جنگ به پا نکرده بود یه روزی که از همسران پادشاه دختر کوچیکش رو به رودی که نزدیک قصب بود برد تا اون رو بشوره فصل بارون تموم شده بود روز آفتابی و زیبایی بود مادر و کودک کنار آب روی ماسه های قرمز رنگ راه میرفتن و به درختان سبز که سر به آسمان آبی کشیده بودن نگاه می کردن. وقتی به رودخانه رسیدند، کودک خودشو به آب زد و با شادی آواز خوند و آب بازی کرد وقتی خوب تمیز و سرحال شد از آب بیرون اومد و به طرف مادرش که کنار رود نشسته بود رفت تو تمام این مدت لاک پشتی بالا یه درخت خرما بود وقتی چشم لاک به کودک افتاد، یه دونه خورما جلوی پای اون انداخت. دختر بچه گفت، ما در نگاه کن، آب تنی حسابی گرست کرده، اجازه میدی اونو بخورم؟ زن خم شد و خرما رو برداشت و با دقت به اون نگاه کرد. وقتی مطمئن شد که سالمه، اون رو به دست بچه داد. لاک پشت هیلگر با دیدن ظاهر زن فهمید که اون یکی از همسرای پادشاهه. بر همین بلافاصله از درخت پایین اومد و با عصبانیت گفت میوه منو چه کردی؟ زود اون رو پس بده. بچه جواب داد اون خوردم. خیلی هم خوشمزه بود اما من نمی دونستم که مال توه. لاکپوش وانمود کرد که خیلی عصبانیه چون که نقشی به فکرش رسیده بود که میتونست از طریق اون سود خوبی ببره. لاک‌پش رو به زنگ کرد و گفت: من بیچاره با این زحمت از این درخت بالا رفتم تا برای خانوادهی گرسنم غذای پیدا کنم. اون وقت تو غذای منو دزدیدی و به دخترت دادی. هاشا هم نکن، خودم با همین چشمم تو رو دیدم. همین حالا پیش پادشاه میرم و به اون میگم که یکی از همسرانت غذای منو دزدیده. زن خنده‌ای کرد و به دختر کوچیکش گفت تو نگران نباشت. بعد رو به لاک‌پشت کرد و گفت شوهر من مرد دیگه و میتونه خسارت تو رو جبران کنه. چطور میتونی چنین تهمتی به من بزنی؟ لاک‌پشت گفت: "باید همین حالا همراه من پیش پادشاه بیای." میدونم پادشاه به این سادگی از این موضوع نمیگذره خودت خوب میدونی که جرم دزدیدن غذا تو این کشور چقدر سنگینه لکبوشون قد قدر فشاری کرد که زن ناچار شد همراه فرزندش با اون به طرف کاخ به راه بیفته وقتی اونجا رسیدن پادشاه با گروهی از مشاوراش زیر درختی نشسته بود لاک‌پوش تا اونجایی که لاک سختش به اون اجازه میداد خم شد و تعظیم کرد بعد گفت آیا قانون این کشور نمیگه که اگه کسی قضا کس دیگری رو بدزده بزرگترین گناه رو مرتکب شده؟ پاچا حرف اون رو تایید کرد و گفت این گناه بزرگیه لاک‌پوش هم داستان ساختگیش رو برای پادشاه تعریف کرد پادشاه که مردی عادل بود به آرومی گفت لایک حالا که تو فکر میکنی یکی از زنای من غذای تو رو دزدیده من صد برابر اون برای خسارت به تو میدم. حالا بگو به جای اون چه چی چیزی از من میخوای؟ بدون هر چیزی رو از من بخوای به تو خواهم داد. بوز، مرغ، برده، هر چی میخوای بگو. لایک بدون اینکه که لحظه کنه گفت من تبل جادویی شما رو میخوام. پادشاه نمیدونست چی بگه. اون مرد شریفی بود و قول داده بود هرچی چی از اون بخواد به اون میده. پس تبل رو به اون دو و با غم و قصه به کاخ رفت. پادشاه به لاک نگفت که اگه پاش روی شاخهای بذاره چه اتفاقی برایش پیش میاد. اون مطمئن بود که لاک در طول زمان به این راز پی خواهد بود. لاکپوست با شادی به خونش برگشت. اون شب خانواده لاکپشت شام مفصلی خوردند. هیچ کدام از اعضای خانواده لاکپشت تا اون شب اینقدر سیر غذا نخورده بودند. زن لاکپوستم از اینکه از اون به بعد مجبور نبود ساعت‌ها تو جنگل به دنبال هیزم بگرده یا ساعتها در کنار اجاق کار کنه خوشحال بود. لاک پشتم مرتب با صدای بلند، در اینکه چطور با زرنگی تونسته تبل را از چنگ پادشاه در بیاره، حرف میزد و میگفت از امروز دیگه مجبور نیستم دنبال کار برم. لاک پشت و خانوادش تا سه روز فقط خوردن و خوابیدن. اما بعد لاکپشت تصمیم گرفت ثروت و هوشش رو به رخ دیگران بکشه. برای همین، برای همه ی کسایی که میشناخت چه حیوان و چه انسان یه دعوتنامه فرستاد و اونا رو برای یه جشن بزرگی دعوت کرد. اما از اونجا که همه اونو به عنوان موجودی فقیر میشناختن، تعداد کمی از اونها به مهمونی اومدن. مردم پیش خودشون فکر میکردن که تو خونه ی لاک چیزی برای خوردن پیدا نمیشه. تعدادی هم حرف اونو باور کردن و به خونش اومدن. لایکپورش بلا فاصل تبلش رو نواخت. ناگهان مهمونا با انبوهی قضا روبرو شدن. اونا تا جایی که میتونستند از اون خوردن و دلی از ازاده رو وردن. بعدم به خونه برگشتن تا به دوستاشون بگن که جشن بزرگی رو از دست دادن. لاک اونقدر خوشحال بود که حد نداشت چون برای اولین بار بود که میدید همه به اون احترام میذارن. لاکپوش هر روز از روز قبل مقرورتر و از خود راضی تر میشد و دیگه حاضر نبود تن به کار کردن بده. اما بشنوید از پادشاه، اون منتظر و امیدوار بود تا همه چیز اونطور که اون میخواد پیش بره لاک پشت دیگه شخص ثروتمندی شده بود و با ثروتمندان شهر رفت و اومد میکرد. اما یه روز وقتی که راه میرفت ندونسته پاشو روی شاخهی گذاشت. اون شب لاک پشت خسته بود و به اندازه کافی هم غذا خورده بود. برای همین تبل رو به صدا در نیاورد اما روز بعد وقتی بیدار شد و دید خونوادش گرسند، سبلو به صدا در آورد تا سبونه اونا رو آماده کنه. با اولین ضربه های و جنجالی به پا شد که لاکبوش اصلا انتظار اونو نداشت. صد تو جنگجو به خونه ی ریختن. اونو خون و زیر مشت و لگت گرفتن. لاکای اونا سخت و محکم بود اما زربه های جنگجوها اونقدر شدید بود که اونا رو آش و لاش روی زمین انداخت. وقتی جنگجوها ناپدید شدن و حال لاک کم بهتر شد، حیوان بدزاد پیش خودش فکر کرد و گفت باید بلایی سر تبل جادویم اومده باشه و اثر جادویی اون از بین رفته باشه. اما چرا فقط من و خونوادم طعم تلخه جادوی بد اون رو بچشیم؟ اگه ما کتک خوردیم، چرا دیگران کتک نخورد؟ با این فکر لاکبوش دوباره تمام کساییو که دفعه قبل دعوت کرده بود دعوت کرد و گفت مهمونی این بار باش تر از دفعه قبله. خبر مهمونی لاکبوش به همه جا رسیده بود. اونایی که دفعه قبل دعوت اون رد کرده بودن این بار مصمم بودن که حتما به جشن با شکوه و, و دیلی از ازادر بیارن. اون شب سیلی از جمعیت که بیشترشون آب تو دهنشون جمع شده بود به طرف خونه ی رفتن و دلشون رو برای غذاهای خوب سابون زدن. لاکبوش همسر و فرزندانش رو به جای ام تو جنگل فرستاده بود تا آسیبی به اونها نرسه. بعد در حالی که خنده یه شیطنه تبلو می کرد تبلو با صدای بلندی دینه خودش هم زیر نیمکتی پنهان شد. تو یه چشم به هم زدن، سیصد جنگجوی خشن ظاهر شدن و تا جایی که نیرو داشتن، مهمونای بیچاره رو کتک زدن و اونا رو بیهوش روی زمین انداختن. بیچاره مهمونا وقتی به هوش اومدن، هر کدوم مجبور بود به دیگری کمک کنه تا بتونه به خونش برگرده. اونا دائم لاک پشت و و نفری میکردند. از اون روز به بعد هر بار که لاکپشت پاشو از خونه میذاش بیرون محال بود که کسی به اون نام نده و در تلافی کاری که کرده بود با اون گلاویز نشه. به خاطر همین لاکپشت به این فکر افتاد که از شر طبل خلاص شه. اون شب وقتی همسایه ها خواب بودند، لاکپشت آروم از تختش پایین اومد و به طرف کاخ پادشاه راه افتاد. پادشاه انتظار دیدن اونو داشت چون خبر جنجالی که تو خونه لاکپشت به پا شده بود به گوش اون هم رسیده بود. پادشاه فهمید که لاکپشت به راز تبل پی نبرده. لاکپشت تبل رو به دست پادشاه داد و گفت: دیگه از دست این خسته شدم. اونو با چیز دیگه عوض کنید. پادشاه که تا به حال از روی شاخهی رد نشده بود، تبل رو پس گرفت و با حالتی که لاک متوجه شادی اون نشه، گفت در برابر تبل یه درخت جادویی به تو میدم. درخت میتونه به تو هر روز یه بار سوپ و غذای فوفو بده. اما بدون اگه هر کسی بیشتر از یه بار در روز، از اون سوپ و قضا برداره درخت خشک میشه و از بین میره. لاکبوشت با خوشحالی درختش رو برداشت و به خونه برد و اونو تو زار و دور از چشم همه پنهان کرد. فردا صبح لاکبوشت دوباره خودش رو گرفت و به همسرش گفت ده کوزه بزرگ بردار و دنبال من بیا. زن در حالی که کاملا مراقب اطراف بود تا مبادا جنگجویی از گوشه‌ای ظاهر بشه، به دنبال مرد به افتاد. اما خوشبختانه خبری از جنگجوها نبود. چیزی نگذشت که زن در مقابلش درخت جادویی فوفو رو دید. بعد با عجله فوفوها رو داخل کوزه ها ریخت و تو کوزه دیگه هم سوپ های اشتهاوری ریخت که از شاخه ها میچکید. اون شب دوباره لاکبوش برای خانوادش جشنی بپای کرد. اما وقتی فرزنداش از اون پرسیدن که غذاها رو از کجا آورده لاکبوش به یاد حرف پادشاه افتاد که نباید بیشتر از یه بار در روز از درخت غذا برداره. پس سکوت کرد و چیزی درباره درخت نگفت. بعد از چند روز بچه ها از اینکه سهم غذاشون کافی نبود شکایت کردند اما پدرشون اجازه نداد کسی بره و غذای بیشتری بیاره فقط اونو همسرش بودند که هر روز برای اووردن غذا از درخت به جنگل میرفتند. پسر بزرگ با خشم به برادرش گفت پدرمو فکر میکنه که می این رازو که غذا رو از کجا میاره پیش خودش نگه داره برید و خاکسترای اجاق و برای من بیارید من محل غذاها رو پیدا خواهم کرد اون وقت میتونیم با دوستامون یه جشن بزرگی بپا کنیم یکی از پسرهای کوچیک رفت و مقداری خاکستر اوورد و داخل ای که گلوی باریکی داشت ریخت بعد کوزه را ته زنبیل پدرش گذاشت برادر بزرگتر روبه به خواهرا و برادرش کرد و گفت حالا پدرمون هر جا بره به دنبال خودش یه ردی جا میذارید. بعد از اون میتونیم اون رو از فاصله دور دنبال کنیم. روز بعد برادر بزرگتر نقشش رو عملی کرد. وقتی به دنبال پدرش از لابلا یه بلند گذشت، با شگفتی دید پدرش مشغول چیدن سوپ و فوفو از درخت جادوییه. پسر به خونه بازگشت تا به موقع برای صبحونه خونه باشه و همراه خونه بادش صبحونه مفصلی بخوره. کمی که گذشت، پسر احساس گرسنگی کرد. برادر و خواهرش رو صدا زد و اونا رو وادار کرد تا قسم بخورن که به کسی چیزی نمیگن. وقتی درخت رو به اونا نشون داد، اونا به سختی تونستن چیزی رو که میدیدن باور کنن. اونا با شادی شروع به خندیدن کردن و با حرس و ولع شروع به خوردن سوپ فوفو کردن. بچه به همدیگه می پدرمون عجیب خودخواه. اون او این راز درخت و از ما که همیشه گروسنه این مخفی نگه داره. بعد اونقدر خوردن تا سیر شدن و بعد تل و خوران، به خونه رفتن تا بخوابن. صبح روز بعد لاکبوش بیدار شد و سراغ درخت فوفو رفت. اما وقتی اونجا رسید آهی کشید چون اثری از درخت نبود. درخت از بین رفته بود و روی محلی که قبلا درخت بود بوته های انبوهی از نخل تیقدار رویده بود. لاکبوش با خودش گفت افسوس. کسی به راز وجود درخت من پی برده و یه بار دیگه از اون قضا برداشت. طلسم درخت شکسته و جادوی اون از بین رفته. لاک‌پشت غمگین و گرسنه به خونه بازگشت و خانواده‌اش رو صدا کرد. اون تمام ماجرا را از اول تا آخر برای همه تعریف کرد. فرزنداش با چشمایی پر از احساس گناه به هم دیگه نگاه می‌کردن. لاکبوش از نگاه اونا متوجه شد که چه کسی باعث نابودی درخت شده. بچه ها که ترسیده بودن هیچ کدوم به گناهشون اعتراف نکردند. لاکبوش خونبادش رو به جنگل برد و بوته یه نخل تیقدار رو نشونشون داد. بعد رو به فرزندانش کرد و گفت تا امروز نهایت تلاشم رو کردم تا قضای شما رو تعمین کنم. اما شما جادوی اون رو باطل کردید. از امروز باید تو جنگل زندگی کنیم تا بتونیم غذامون رو پیدا کنیم از اون روز به بعد لطپشت و خونوادش زیر درخت نخل خونه ای ساختن و اونجا زندگی کردند سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی